بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحيمه الله وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصبعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المصبعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفو غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا, لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ما در آخرین جلسه‌ای که داشتیم در بحث ثلاثه الاصول، ثو من اصل و اونم رسول الله صلی الله علیه و وسلم. ما گفتیم ثلاثه الاصول، امسه تا اصل که در قر سوال می‌شیم، از پروردگارم سوال می‌شیم، از اسلامم سوال می‌شیم، و آخرین مطلبی که ما سوال می‌شیم، بحث پیامبرمون که بهش اعتقاد داشتیم و گفتیم اشهد ان محمد رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم کی بود؟ دعوتش کی بود؟ این چیزی که مهمه در بحث رسول الله صلی الله علیه و وسلم که جوامع دیدیم بعد، اینکه رسول رسالتش چی بوده؟ کسی که رسول بوده، پیام، پیامبر بوده، پیغامش از طرف پروردگار چی بوده؟ یکی از پیغام هایی که رسول صلی الله علیه و سلم داشته، نمازهای فرض پنجگانه بوده. از پیغام هایی که برای ما داشته از رسالت هایی که داشته، ما اونم در معراج سال 10 سال رسول صلی الله علیه و سلم در مکه دعوت میدن بعد از اون خدیجه و همچنین عموی رسول الله صلی الله علیه و فوت میشن، تو پناهی که داشت رسول صلی الله علیه و سلم خداوند از باب تسلیت خاطر و حکمت‌های دیگری که خداوند داشتن برای رسول الله صلی الله علیه و سلام رسول الله صلی الله علیه و سلام معراج میشن عروج بیدن میکنن میرن به اول به اسرا سبحان الله الی اصبا لیله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى از مسجد الحرام توسط براق و جبرائیل میرن به مسجد اقصا در اونجا بر برای پیامبرانم و خداوند نماز میخونن و بعد از اونجا بعد از اینکه نماز خوندن رفتن به آسمان‌های هفگانه از آسمانی به آسمان دیگر و با پیامبران خدا از ادریس گرفته تا موسا و حارون و تا آخرین آسمانی که ابراهیم علیه السلام در آن بود ملاقات می‌کنه بعد از اون جبریل میگه که برات این من نمیتونم بیام رسول الله علیه و سلم به ملاقات پروردگار در آنجا که جبریل نتونست بیاد بینشو رسول الله صلی اللہ علیه بین ایشان و بین پروردگار حجابی از نور بود حجاب و نور در درسه مسلم داریم حجاب و نور لو اشرقت صبحت و وجهی لأحرقت مده بصرهی من خلقه سوال میگوست صحابه ایا خدا را دیدی فرمودن حجابی که بین من و پهبردگاه بود از نور بود اگر یک پرتوب و شعاع نور وجه خداوند صورت خداوند و یک پرتوب نورش اگر از آن حجاب عبور بکند تمامی مخلوقات آتش خواهن گرفت تمامی مخلوقات پهبردگار آنها را میبیند همه آتش خواهن گرفت این عزانت الله باریکالا هست در آنجا خداوند نمازهای های گانه را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض میکنه و عائشه رضی الله عنها میگوید اولین بالی که نماز فرض شده بود دو رکعت دو رکعت الا نماز مغرب که همون سرکعت بود سپس بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت کرد سال پس از اینکه هجرت کردن بعد از اینکه وارد مدینه میشن نماز فرض ظهر و عصر و عشا چهار میشه صبح و فجر به حالت اول خودش باقی میمونه مغرب ما همون طور فقط این سه تا نماز که تغییر پیدا میکنه و خداوند چهار رکعتش میکنه برای مقیم کسی که در جایی نشسته و اقامت کرده و همچنین دیگر فرایض از زکات گرفته و حج گرفته هرچند که بعضی ها گفتن حج قبل از هجرت فرض شده اگه خب نصاب‌هاش رو نمی‌دونم شطور چقدر و گاب چقدر و نمی‌دونم دوستان چقدر اینها گفته شده که بعد از اجتهاد رسول الله صلی الله علیه و اون چیزی که الان برای ما مهمه اینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از معراج پایین میان و بعد از اینکه کوئین سه سال در مکه به سر می‌برن تا اینکه با انصار ملاقات میکنن و وعده میده به انصار که هجرت بکنه رسول الله صلی الله علیه و از سرزمین شرق خداون دستور بش میده که از سرزمین شرک هجرت بکنه و بره به سرزمین اسلام به جایی که مردم اسلام را پذیرفتن و میخواهند مسلمان واقعی بشن رسول الله صلی الله علیه و سلم اکتفا میکنه به همون سه خدام اکتفا میکنه این دستور پروردگار بود که به این 13 سال اکتفا بکنه و بعد از آن هجرت بکنه و بره به مدینه هرچند که ما قبلا کمی پیش ما داشتیم در سیاست مقابل قبل ما داشتیم که اولین سوره که بر رسول الله علیه و سلم نازل میشه اقراب بود بعد از اون مدثر بود که در اونجا خداوند دستور میده به رسول الله صلی الله علیه و سلم ورجز فاجر از پلیدی از ناپاکی دوری کن حجر کردن اصل کلمه حجر ترک کردن در لغت به معنای ترکه و در اصطلاح گفته شده ترک اون چیزی که خداوند دوست نداره با اون چیزی که دوست داره یعنی اون چیزی که دوست داره خدا اون چیزی که خداوند دوست داره ما ترکش بکنیم رهاش بکنیم و بریم بچسی به اون چیزی که خدا دوستش داره اینجا رسول الله علیه و سلم ترک میکنن مکه به خاطر بغض خداوند به شرک و مشرکین و برای براءت از شرک و مشرکین خداوند دستور میده که از این سرزمین شرک و سرزمین مشرکین هجرت بکنه به سرزمین اسلام. البته بعضی هم گفتم تعریف اصطلاحی هجرت رو خاصش کردن چنانچه اینجا مالفه کتاب داریم محمد وهاب رحم الله میاد میگه در تعریف هجرت اینکه هجرت هجرت کردن از سرزمین شرک به سرزمین اسلام. هرچند کلمه هج و هجرت یک کلمه وسیعی هست. گفتم همونطور که حج در لغت ترک کردنه در اصطلاح هم نمیشه گفت فقط ترک کردنه فقط ترک, ترک کردن از سرزمین کفره بلکه ترک کردن شرک خودش هم هست انسانی که میخواد وارد اسلام بشه باید شرک را ترک بکنه باید معاصی را ترک بکنه این لزوم اسلام ما هست یا یه امنوا ادخلوا في سلم کافه اکتانی که شما واردت از تمامی درهای ساحر هر چیزی که اسلام بهتون گفته انجام بدید این تسلیم کامل ادخلوا في السلم تسلیم بشید این چیزی که خداوند از این خواسته. مسلمان واقعی بشیم. و از ما خواسته که ما نسبت به طاغود، نسبت به شرک کافر بشیم. همونطور که خداوند از این خواسته که ما اعلام براعت بکنیم از کفر و کفار، از کفرشون و شرکشون و اهل کفر و اهل شرک. هر دوتاشون با هم. چنانکه ما قبلا در بحث بلابرا داشتیم. خداوند در قرآن میفرماید ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اجتناب دوري از طاغوت طاغوت هر چیزیه میاد بحثش در آخرین بحثی که ما داریم بحث طاغوته هر چیزی که غیر از خدا فرسیدی میشه اطاعت میشه پیروی میشه ما باید دوری بجویم به خاطر همین خداوند قبل از جاهایی در قرآن اول عبادتو ذکر میکنه بعد کفر به طاغوت و جاهای کفر به طاغوت را تقدیم میکنه که ان شاء الله بحثش خواهد اومد اون چیزی که برای ما مهمه یک فرد مسلمان نمیتونه هم مشرک باشه هم مؤمن یا مشرک یا مؤمن نمیتونه بگه که من الله هر دو تا با هم هم از دین محافظت میکنم بر دین آبا و اجدادم بودپرسی و مرده پرستی هم بر اسلام لازمه مسلمان بودن مؤمن بودن براءت و جوری از شرک این اصل هجرت این اصل هجرت و رجز تهجور و رجز هرچی که ناپاک یلا گفته شده معا... معاصی و گناه و گفته شده و گناهان و گفته شده هم رز بوتا هست اصل کلمه رز و رجز از همون ناپاکی و پلیدی گرفته شده هر چیزی که ناپاک، هر چیزی که ناپسنده هر چیزی که خدا من دوستش نداره پس بعد از 13 سال در مکه خدا من دستور میده به رسول الله صلی الله علیه و سلم که هجرت بکنه از سرزمین کفه به سرزمین اسلام هجرت هجرتی که خدا من از این خاص انوار داره ما یک هجرت عام داریم یک هجرتی خاص داریم هجرت عام که تا روز قیامت هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید لا فم الهجرت حتی فم توبه تا وقتی که توبه قطع نشده یعنی درهای توبه بسته نشده هجرت باقی هست چه موقع درهای توبه بسته میشه درهای توبه وقتی بسته میشه که خورشید از غروب طلوع بکنه از جهت غروب طلوع بکنه چنانچه ما در حدیث صحیح داریم و اینجا هم در حدیث داریم که در سنن نبویه هست و حدیث صحیح است ولا تنقطع التوبه تو حتى تطلع الشمس من مغربیها در اون وقت هست که دیگه هجرت معنی نداره حالا چه هجرت میخواد از گناه و شرک باشه و چه هجرت از سرزمین کفر به سرزمین اسلام باشه تمامی انواع هجرت هجرت عام میگفتیم همونطور که خداوند در قرآن در بحث همین بحث توبه ما داریم خداوند میگه و يومئذٍ آتیب عباد ربك لا ينسى نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا اون روزی که بعض از های پروردگار خواهد آمد بحث چیه چه نشانه ای رسول الله صلی الله ذکر کردن در تبیین و شرح این آیه اون نشانه ای که دیگه بعد از اون ایمانی دیگه سود نداره که پس از اون شخص بگه من الان مؤمنم یا من الان حجر میکنم اعمال بد و اعمال شرک و اعمال و گناه دیگه اون روزی که دیگه نصر نداره و سود نداره توبه کردن چه روزیه روزی که خورشید از جهت مغرب جلوه خواهد کرد این آیه قرآن ما داریم و اینم دلالت حدیث که دلالت میده بر هجرت عام اما هجرت خاص اون هجرتی که که خداوند دستور میده به رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب براءت از شرک و مشرکین هجرتی خاص هست و دستور به صحابه است و آیاتی هم خداوند نازل میکنه در اونجا هجرت از مکی هست. به مدینه که رسولون صلی اللہ علیہ وسلم میفرماین لا هجرت بعد الفتح بعد الفتح مکه دیگه هجرتی نیست لا هجرت يعني این اون هجرت خاص اون هجرتی که در این آیات خطاب خطاب خودعام بوده به صحابه دیگه این خطاب دیگه الان بحث از این دیگه هجرتی نیست بعد از اینکه مکه فتح شد دیگه هجرتی نیست از مکه به مدینه دیگه مکه هم سعزمین اسلام شد ولی این هجرت تا ق تا وقتی که قیامت است گفتیم چنانچه اون حدیث قبلی داشتیم تا وقت قیامت هست تا وقت قیامت برپا نشده هجرت باقیز و با مسلمانان وظیفه دارن سرزمین شرک و مشرکین را ترک بکنن رها بکنن و برن به سرزمین اصلا اگر توانیش داشته باشن اما اگر توانیشو نداشته باشن دیگه مکلفش نیستن لا یکلف الله نفسن الا وسعها و الهجرت فریضتون علی ها هجرت فرضه آیا مطلقا هجرت فرضه در, در آمریکا، در اروپا در یک کشور غیر اسلامی در هند در یک کشور بودایی در یک کشور کمونیستی، در هر کشوری زندگی میکنه آیا مطلقا هجرت فرضه یا نه هجرت جای فرضه و جای مستحبه جای انسان امکانش هست که شعیره خدا شعیره خدا از نماز و روزه و دیگر احکام الهی را برقابه داره اونجا مستحبه شخصی از هند هجرت بکنه به جای دیگر اگر جای دیگه برسه الان دیگه خودت هم میدونی دیگه هر جایی با ویزه و نمیدونم مقامه و نمیدونم هزار بساتی که الان به پا کردن نمیشه هجرت کرد ولی که در صورتی که باشه و انسان بتونه وظیفه شد هست که هجرت بکنه هجرت بکنه از سرزمین کف به سرزمین اسلام ولی خب علما شرط و شروط گذاشتن گفتن یک نوع هجرتی هست هجرت فرض و یک نوع مستحبه جایی که شعیره اسلام را میتونه برپا بداره کسی مزاحمش نیست با عزت و افتخار میتونه اسلامش رو بیان بکنه نه اینکه ترسش باشه بزل باشه نماز نخونه روزه نگیره که نه مشرکین میدونن نه کفار میدونن نه من اذیت میشم نه من فلان میشم اگر نمیتونه شعیره اسلام نماز را با جماعت برپا بکنه اعیاد و جمعه و جماعات را برپا بداره وزیفهش هست اون شخص از اون شهر از اون مملکت از اون کشور از اون سرزمین هجرت بکنه به سرزمینی که بتونه این شعائر خدا که فرض کرده در آسمان هفتون قصد نماز را برپا بداره اونم با جماعت نفر وزیفه فریضه. حریزه وله هجرت و فریضه طعا لهذه الامم در اون شخصی که نمیتونه تظاهر بکنه به اسلام نمیتونه افتخار بکنه به اسلامش، حزت نداره در اسلامش، اون شخص وظیفه‌اش هست که هجرت بکنه به جایی که اسلام عزت داره. اما اگر میتونه و میتونه هم دعوت بده ما بین اونها خصوصا شرایطش براش فراهمه، اونجا هست که در حق اون شخص مستحب و جایی هم شرط حرام بشه در حقش احکام پنجگانه شرع از کراهت و مستحب و مباح و اینا بر این قضیه مترتب بشه. بر کسانی که مثلا فرض ندارن کسی برایشون کسی نیست برایشون دعوت بده جز مثلا اون عالم اون داعیه و میتونم هم شعائر خدا و دین خدا رو برپا داره واجب هست که اون شخص بمونه اونجا دیگه هجرت نکنه و هی باقیتون الى التقوم ساعة و هجرت باقیست یعنی هجرت عام قیام قیامت و قول قوله تعالی این الذين توفاهم الملائکت ظالمی انفسیم خدا باید. در درباره کسانی که امتناع دیدن از هجرت کردن به اسم ظالم یاد میکنه اینجا ان الذين توصاهم الملائکه ظالم انفسهم ملائکه, ملائکه قبض روحشون کردن در حق خودشون ظلم کردن چه زل میکردن قالو فيما كنتم قالو كنا مستضعفين في الارض گفتن اونایی که ملائکه, ملائکه قبض روحشون میکنن میگن کجا بودیم؟ میگن ما مستضعف بودیم این هجرت بکنیم قالو ملائکه بهشون میگه الم تکون ارض الله واسعه آیا سرزمین و خدا صحن نبود؟ نبود فتو هاجر فرون تا اینکه هجرت بکنید فاولایک فا ماواهم جهنم و سات مسیرا اینها جاش اونهایی که امتنا ورزیدن از هجرت هجرت از سرزمین شر به سرزمین اسلام اونا چی ان اونها جهنمی خب حالا صحابه چی آیا کسی اگر هجرت نکرد از سرزمین شر و سرزمین کو به سرزمین اسلام آیا اون شخص سفر خیر ما گفتیم احسام پنج اسلام از واجب و حرام و مکروه و مباح و مستحب بر هجرت مترتب میشه عدم هجرت کفراتبر نیست چه دلیلی میاره معلف بر اینکه اینجا این جهنمی که خداوند وعده داده برای کسانی که امتناع ورز هجرت کردن چه دلیلی ورد معلف؟ آیه بعدی آورده و قوله تعالی یا عبادی الذين ای بندگانی که ایمان آوردید ان ارضی واسعه فیا عبده استاد سرزمین من تهناور رو بپرسید خود میگه مؤلف میگه قال البغوی رحم ما سبب نزول هذه الايه فی المسلمین الذين لم میاج رو اون های نزول این آه حتی آلبانی هم در سای ایران روبی از مصاف نحو میکنم یه قضیه. آلبانی اشاره میکنه به تصیح این روایت و اینکه چند نزولله این, نزول این در درشان کسانی هستند که نتونستن اجرات بکنن. اینجا ملت میگه نادا الله و به اسم ایمان خدا به اسم ایمان اونو را خطاب کرد اگر کافر بودن مشرل بودن خداب نمی گفت پیرگاری لینامنون. ای بندگان من که ایمان آوردی ثازمین متهاوار است اونایی که نتونستن هجرت به سبب نزول اینها پس اینجا این جهنمی که خداوند وعده داده به کسانی که هجرت نکردن برای کسانی است که قدرت هجرت رو داشتن قدرت هجرت رو داشتن و هیچ مانعی هم نبود برایشون ولی امتناع دیدن. اونها هست که چی در مقابل این گناه ترک کردن این فرض معاخذه خواهند شد فاولاکم موهم جهنم و سات مصیره الا المستضعفين من الرجال والنساء ما از زنان و مردان هم ولدان اون بچه‌هایی که نمیتونن لا یستطیعون حیلتا ولا یجدون سبیلا هیچ راه حل راه چاره‌ای اندیشه ای ندارن برای اینکه هجرت بکنن فالائک اس الله ان يعفو عنهم وكان الله عفو غفورا اونها شاید خدای من اونهایی که مستضعف بودن و نتونستن توانایییش نداشتن یا راه بلد نبودن لازم نیست که توانایی مادیشو داشته باشن شاید راه بلد نباشن اونها شاید خدای من اونها رو ببخشه و اونها خدای اونها را بیا پس این انواع هجرت که خدای در هذه آيات اشاره كادا قال المؤلف رحيمه الله فلما استقر بالمدينة امر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام فصلاة الله صلى الله عليه وسلم در ان دهتالي كمستقر سنن در مدينة دهتالي سننك ده ده بما بقية شرائط الإسلام را فابل ران الزكاة روزة حج والجهاد و از آن و امر معروف و نهی از منکر و دیگر شریعت های اسلام از بر والدین گرفته و غیبت نکردن و تهمت نزدن و دیگر شریعت های اسلام که زیادنی که دوتا نیستند اینها شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم که مأمور بوده از طرف خداوند پیغام آور بوده این پیغام را به ما رسونده و ابلاغ کرده بهمون که ما عملیش بکنیم ما تسلیم عمر خدا بشیم و اطاعت از خدا بکنیم در اون فرمانه هایی که به همون داده خدا من و وحکده بر رسول الله صلی اللہ علیه اما مسئله مهمی هست در بحث خصوصا اینجا اشاره میکنه وَلْعَذَن وَلْعَذَن اشاره به ازان میکنه ازان مسئله مهمی هست رسول الله صلی اللہ علیه سلام اگر میخواستن در غزوات خودشون اگر میخواستن حمله بکنن بر سرزمینی بر شهری اول کردن تا صبح بشه اگر صدای اذان را شنیدن حمله نمی کردن. اگر نشنیدن اونجا هست که به عنوان اینکه سرزمین اسلام نیست رسول الله بر اونها حمله میکرد بحث اذان بحث مهمه بحث اینجا فرسخقدر کلمه اذان آورد فقط از هجرت بحث اینه که اسلام عزیز باشه انسان افتخار بکنه به اسلامش بتونه اسلامش رو برپا بداره اسلامش رو عملی بکنه اما اگر نتونه این عزت رو نداره که اسلام رو برپا بداره اذان را بگه اونجا هست که مستحق چیه مستحق قتل مستحق جهاد من انی مساعی مجاهدات بیان اونها را با مبارزه بکنه مستحق اینن که مسلمان بیان با اونها بجنگن به چیزی که فعل رسول الله صلی الله علیه و سلام دلالت میده چنانچه در سیرت مدن قال المؤلف رحمه الله اخذ علی هذا 10 سنین و بعدها توفیی صلوات الله و سلامه عليه و علیه و دینه باق میگه رسول الله صلی الله علیه و سلام تعبد دادن ده سال در مدینه و بعد از اون رسول صلی الله علیه و سلم و یافتند سلامات خداوند و سلامش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و دینشم همچنان باقی هست 1435 ساله که دین رسول صلی الله علیه و سلم باقی هست و خداوند باقی گذاشته و حفظش کرده همونطور که خداوند تعهد گرفته بر خودش که قرآن را حفظ بکنه همونطور خدا خداوند میگه نحن نعزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما ذكر القرآن نازل كارديم وماهم حفظش ميكونام خوضباً حفظ كارديم نتانينا حفظ القرآن بلك حفظ سنتم همي تورتون قرآن بدون حفظ معناش أرزش نداره ونزلنا إليك الذكر التي تبين للناس ما نزل إليهم ذكر نازل كارديم تتابين ببنى برأي مردم وانشي ذكر در ذكر في مني در القرآن بيان فالمودي الحمد لله ما هزار و 400 اندی سال هست که دارن نماز می‌خونیم چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یاد دادن اون اقیم الصلاهی که بهمون گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند در چه در چه نماز بخونیم چه رکعت نماز بخونیم چطور نماز بخونیم اینا همه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما بیان داشتند رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه ده سال در مدینه دعوت میدهند در آخر حیات خودش با توجه به مریزی خودش با اون سردردی که داشتن تبی که داشتن تا جایی که عایشه بی بی اطم است تا رسول الله علیه و سلم می سوخ. سر رسول الله علیه و سلم بر پای عایشه رضی الله عنها بود در اتاق عایشه آب را برمی داشتند بر داشتن. الله علیه و بر سر پیشانی خودشون میباشیدند و میگفتند اللهم رفیق الاعلى پروردگار رفاقت خودت خودشون خنک میکردند قش میکردن، می دوباره به هوش می آمدند رسول الله صلی علیه و در اون آخرین لحظات زندگی ش هم بحث براءت از مشرکین و از شکرا فراموش نکردن. و امتش را تحضیر دادن و هشدار دادن از این که امت دوباره بر بگردن به مرد پرسی و بطرسی رسوله الله اللہ علیه و وسلم کل این 23 سال دعوتش 10 سال در مدينه و 13 سال در مکه همش دعوتش توحید بود همش دعوت به حجر و دوری کردن از معاصي و بناهان و شرک و کف بود تا آخرین لحظات زندگی رسوله الله عليه و وسلم که می لا تجعل قبر وثنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد من دون الله دعوا ميدن اس خدا ميخواستن قبر من وثن و بو سي قرار نده ك كتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت فالمدن بلعنت مي كردن يهود و نصارا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خدا لعنات يهود و بر قبر پیامبران خداشون بارگاهی ساختن، مزاری ساختند، زیارتگاهی ساختن، مساجدی رو برپا کردند که در اونجا جایی که باید عبادت خداوند یکتا بشه، عبادت غیر خدا بشه، مرده پرستیده بشه، پیامبر خدا پرستیده بشه. و ان الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد مال خداست. ما حق نداریم در جایی که خدا پرستی میشه غیر خدا را صدا بزنید ولی که یهود و نصار این کار را کردن مساددشون کلیسه هاشون عبادتگاه هاشون را محل شرک و مرد پرستی و نمیدونم پیان پرستی کردن و از غیر خدا من خواستند رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در آخرین لحظات زندگیش همه امتش رو داشت دل و امتش بود شاید امتش گمراه بشن دوباره تحضیر میداد میداد. برحذر باشن از اینکه دوباره مثل امت‌های پیشین گمراه نشن فاصله ای نبود بین عیسی علیه السلام و رسول الله صلی علیه و سلم سال بیشتر فاصله نبود ولی با توجه به این فاصله اندک و کم امت نصارا گمراه شدند همچنین یهود و دیگر امتها گمراه شدند رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن بودند هم غم این داشتن که شاید امتش هم همینطور بشن در اون گمراهی‌های امت‌های پیشین دوباره در همون گمراه ها وارد بشن و همون گمراه های قبلا بوده دوباره همونها رو دوباره انجام بدن. پس این مسئله خیلی مهمی هست و اونم دعوت به سوی توحید، دعوت به سوی تقریسی و دوری از مردقرصی. قل هذه سبیلی ادرو إلى الله علی بصیره. و من تبع ای محمد بگو این دعوت من این به سال دعوت رسول الله علیه و سلم به سوی الله، ودورية ثوابت، ودورية الشرك، وجنائهم على سياس، حشكارنا، تأكدنا، وتأكدنا تامميا إنها، كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة وأنما بتيرات با السدلال، السدلال بقرآن وسنة الناس السدلال بقيل قال، با أبا وإجدار، إن سنة سنة أمة ما قبل ما بودي وإذا قيلهم تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا. اگر بهشون میگفتن این دلیل از خداونده این وحی خداونده میگفتن که نه ما پیروی از آبا و اجدادمون میکنیم پس ماها باید روی دلیل باشیم دلیل از قران و سنت اون چیزی که خداوند وحی کرده و حفظش کرده برای ما ما باید ملتزم با آن باشیم مستقیم با آن باشیم و با تسلیم اون باشیم پس رسول الله صلی الله علیه و دعوتش بیس سال به سوی توحید بود تا اینکه خداوند او را داد و رس به رفیع به اون جایی که خداوند خواسته بود به پیش خودش روحش رو قبض میکنه و خداوند هم در قرآن حالا بحثش خواهد اومد بیان میکنه و خصوصا بحث وفات رسول الله صلی الله علیه و که انشاءالله در بحث بعدی بیانش خواهیم کرد پس این دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله به سوره توحید سبیلی ادعو الی الله دعवत و البسیه توحید باشه این آیه اهمیت علم عقیده و علم اعتقاد و خدا را می‌آیند. كل هذه ها هایی ثابت ادعا داریه و دعابت مسیحیت بدی، بده خداوند براش مهم باشه که خداوند ازش چی خاصه؟ من و پیروای من، انا و من تبعمی. اگر پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم و دعابت ملکین و باش شبه استقامت بکنی بر راه انبیاء و پیامبران خداوند بر روی توحید و دوری از شرک مشتیکین. و صلی الله علی محمد و آل محمد.